اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباحثهمون با شما مؤمنین و مؤمنات درباره بیماری پرفشاری خون و بیماریای قلبی و سکته قلبی بود گفتیم سی چیز برای این افراد بده از حیث پیدایش تشدید و یا موندگاری این بیماریا و بعد درمانهای بیان کردیم رسیدیم به استفاده از عرقیات طبیعی سنتی که دو گونه هست به نوع داروهای مفرده از عرقیات مثلا گلاب طبیعی مقوی اعصاب، مقوی قلب دافع اخلاط خونی مثلا عرق مرزنجوش باز کنندگی گرفتگی قلبی و مغزی عرق گشنیز مفید برای قلب و مغز و سیستم گوارشی گرچه کلسترول بدن پایین میان. عرق گزن مقوی اعصاب و قلب دفع کننده خلط خونی و کاهش قند خونه، عرق طبیعی اناب برای تولید خون سالم تمیز و تصفیه کننده خونه، عرق کلپوره در درمان آنجین صدری یا دردهای منتشره در جناق سینه مفیده هم. عرق کرفس بازکننده عروق اروغ قلب عرق کاهوم تصفیه کننده خون و کاهش حرارت داخلی خون و دستگاه گوارشم عرق برق برگ چقندر هم تصفیه کننده خونه هم باعث ازدیاد شیر مادرن عرق کاسنی تصفیه کننده خون و ازدیاد اسپرم سالم در مرد و فعالسازی سازی تخمدان در زن و طول عمر مفید برای تخمک زنه عرق شوید تا این آورنده چربیای های و کاهش دهنده فشار خون، عرق شمبلیله پایین آورنده چربیای مزر خون و کاهش دهنده فشار خون. عرق شاتره تصفیه کننده خون سفرابر کاهش دهنده قلزت و چسبندگی خونه عرق زنیان بالا برنده فشار خون پایین و درمان کننده چاقی شکمی و اگر با مغز گردو خورده شود درمان کننده بواسیر دگمئی و ساجمیه تو بحث بیماری همورویت عرق بابونه قاعده آور در زنان و رقیق کننده خون قلیز در مثانه مرد و زن عرق آویشن افزایش دهنده فشار خون و مغزی اعصاب و ضد تشنج خفیفه، عرق نعنا درمان امراض قلبی و گوارشی و جهاز تنفسی عرق یونجه تقویت عمومی بدن عامل جلوگیری از خونریزی و ضد پارکینسون یا لقوه یا عدم تعادل در حرکت ضد رعشم و ضد تشنجم کسانی که معتاده به دخانیات یا مواد افیونی یا قرصهای روان برگردان اصلا به مدت سه روز تا یک هفته روزی استکان بگیم چای یونجه یا عرق یونجه بخورم به قدری استفراغ میکنن دیگه از هرچی ماده دخانی و افیونی بدش میان دیگه نمیره سر اونا نوزده عرب عرق کاهنده فشار خون بند آورنده خونریزی از بینی کاهنده قند خون و در زنان دختران بالغ عاقلن عاقل قاعده آور اما تنظیم قاعدگی میکنه درمان لکبینی بینی میکنه و مقوی قلب عین خود گل بو مادران یا مرباش یا دم کردش شماره 20 عرق خارشتر تصفیه کننده خون و کبد خودش هم همجوره گرجن کلیارو فعال میکنه و یه هل دهنده طبیعی در هول دادنشن و سنگ کلیه است یک عرق زنجبیل ضد انعقاد خون و ضد لخته خون و همچنین در مادران شیرده به اطفالشون مخلوط زنجفیل با رازیانه سبب ازدیاد شیر مادره لذا ابو علی سینا در قانون چاپای جدید هشت جلدی در جلد دوم این مطلب رو بیان کرده که مخلوط زنجفیل با رازیانه سبب ازدیاد شیر مادره عرق زنجبیل ضد انعقاد و لخته شدن خونه اثر آن از تأثیر سیر و پیاز و قرص شیمیایی آسپرین در پدیده زد انعقادی خون بیشتر عرق زنجبیل همچون زنجبیل محرک قلب و ضد کلسترول و ضد سرطان هم هست کسانی که دوست دارن مندگاری حافظه و عدم ابتلاعه به نسیان و فراموشی و عدم ابتلاعه به دمانس یا زوال عقل و عدم ابتلاعه به آلزایمر یا زوال عقل پیش رننده. به اینا مبتلا نشن فرمایش امام رضا علیه السلام زنجفیل پرورده شده در اصل هر صبح نشته مصرف کنند. تو بحث ما که بحث خونه چیه؟ زد انعقاد و زد لخت شدن خونه و پیشگیری میکنه از آمبولی های مختلف در ریه، در قلب، در مرز و مانندو بیست و دوم عرق برگ گردو کاهش دهنده کلسترولوبر و تیریگلی سیریده خون کاهنده قند خون تنظیم فشار خون درمان التهاب و ورم مفاصل و کمک به درمان نقرس یا بیماری ام پس چیزایی که مربوط به خون و قلب و تو بحث عرقیات سنتی دو عرق طبیعی برای شما اسفاردن حالا عرقیات مرکبه 5 تا هست یک عرق مرکبه بالا برنده فشار خون کسانی که همیشه فشار خونشون زیر دهه و گاهی به هفت و شیش میرسه و به حالت اغما میافتن زمین و ارژانسی رنگشون مثل گچ سفید میشه و دست پاشون شروع میکنه به لرزیدن حالا اینها چکار کنیم فشار خونشون بیاد یازه دوازه؟ عرق مرکبه بالا برنده فشارخون یعنی ضد فشارخون پایین سه چیز رو باید قاطی کنیم بادرنج بویه گله میخک دارویی و یکی هم آبیشن حالا تو بحث عرقیاتیم عرق طبیعی بادرنج بویه به اضافه ایم. عرق طبیعی میخک گله میخک دارویی بیز آثینا عرق طبیعی آویشن نسبتا مصادی. داروی مرکبه دوم عرق مرکبه پایین فشار خون اگر بیماری دارید همیشه فشار خونش بالاست 14 16 18 22 اورژانسی حالا چیکار کنید بیایید پایین فشار انقبازیش؟ 11 دوازده بماند افسایش پیدا نکند درون مرکبه پایین آورنده فشار خون یعنی ضد فشار خون بالا چهار چیز رو باید قاطی کنی نسبت مساوی شنبلیله به اضافه کاسنی به اضافه شیوید به اضافه عناب حالا بحث عرقیات مرکبه این عرق مرکبه از یک، عرق طبیعی شنبلیله، دو، عرق طبیعی کاسنی، سه، عرق طبیعی شیوید، چهار، عرق طبیعی عناب، دارو مرکبه سوم کسی که همیشه چربی خونش بالاست و سختیه، و سختی رگها دارد و رگهاش سفت و سخته سوم عرق مرکبه چربی خون یعنی کاهش دهنده چربی خون و رفع سفتی و سختی رگها از باب اینکه تسلب شرایین به نوع زیاد دارد چند چیز باید قاطی کنیم شوید به اضافه شنبلیله به اضافه زیره به اضافه گشنیز به اضافه کاسنی به اضافه کربس به اضافه بید برگ بیت یا گل بید حالا اون تو عرقیات مرکب است عرق طبیعی شوید به اضافه عرق طبیعی شنبلیله به اضافه عرق طبیعی زیره به اضافه عرق طبیعی گشنیز به اضافه عرق طبیعی کاسنی به اضافه عرق طبیعی کرفس به اضافه عرق طبیعی بی نسبت ها حالا از این مخلوط نسب استکان میخوریم در 24 ساعت چهارون عرق مرکبه خون و کبد کسی که خونش آلوده است و یا کبدش چربه به نوع گریدهای مختلف حالا عرق مرکبه تصفیه کننده خون و همچنین تصفیه کننده کبد از آنزیمهای بالای کبدیم دارو مرکبش کاسنی به اضافه شاتره به اضافه گزنه به اضافه گلم ختمی خببازی به اضافه خارشتر به اضافه خارخسک به اضافه بومادران به اضافه کرفس حالا بحثمون تو عرقیات مرکبست عرق طبیعی کاسنی به اضافه عرق طبیعی شاتره به اضافه عرق طبیعی گزنه به اضافه عرق طبیعی گل ختمی خبازی به اضافه عرق طبیعی خارشتوری شطری به اضافه عرق طبیعی خارخسک به اضافه عرق طبیعی گل بومادران به اضافه عرق طبیعی کرفس نسبتا مساوی مصرف نسبه استکان در موارد سخت به یک استکان هم میرسه اما بین دوتا نصف استکان دوازده ساعت فاصله باشه. آخرین داروی مرکبه عرقی تو بحثای قلب و عروق. پنجام عرق مرکبه قلب یعنی ضد درد قلب، زد سوزش قلب، زد گرفتگی قلب و زد تپش اضافی قلب. جور مرکبه سونبولاتیت یا گل گاوزبان به اضافه گل بهار نارنج به اضافه مرزنجوش به اضافه بابونه به اضافه گل استخوذوس به اضافه کلپوره گلش به اضافه بادرنج بویه به اضافه گل بومادران حالا دارون مراکبه عرقی عرق طبیعی سمبولو تیب به از... یا... یا عرق طبیعی گلگاو زبان چرا اینجا من یا میگم؟ چون کسی که این نارسایه قلبی داره گایی از پرکاری تیراییدم داره اینجا گلگاو زبان میگذاریم به جای سمبولو تیب گایی از قلبی داره ناراهتی های داره اون وقت سنبولو تیب میگذاریم. مخصوصا اگه ضعف اعصاب شدید باشه و یا استراب شدید داریم. رضا اولیشو یا بیاریم. عرق سنبولو یا عرق گلگاب زبان. به اضافه عرق طبیعی گل بحار نارنج، عرق طبیعی مرزن جوش. عرق طبیعی بابونه، عرق طبیعی دوست، عرق طبیعی کلپوره، عرق طبیعی بادرنج بویه به اضافه عرق طبیعی گل بومادران. پس 22 تا داروی مفرده به نوع عرقیات سنتی و 5 نوع عرق مرکبه به نوع چی؟ بازم طب سنتی خدمتون گفتیم. بعضی از اینها به نوع تک تک اصلا روایات داریم تو کتطور به شیه تصا بوده. یه سری میوهجات هست برای قلبتون خوبه مثل چی معامات و معامین مثل میوه امله مثل میوه گلابی مثل میوه به رسیده شیرین معطر زرد اینا میبه که مقوی قلبه. گایی نه گل‌ها هست یا گیاهانیه که مقوی قلبه. گایی گل‌ها یا گیاهانیه که مقوی قلبه. مثل چی؟ مثل گل بومادران مقوی قلب. مثل گلابی که مخلوط با عسل آویشنه هر دو مفرح قلبه ممزوجن مقوی قلبم است ضد تپش قلب و ذعوان اضافی هم است و چیزهای دیگه ما مانند این و معاملات اینام سوالاتتون چی مطالب هست بخونم خسته نمیشه ما فاستیره ورتنی. من حواسم به جای <تصفيق> اگر کسی تپش قلب بالا داره، فایده از ترشیجات مثل غرغروت، لواشک، ترشک، آب ماست، ترشیجات بندری و لیته و همچنین پلا، و نردبان زیاد بالا و پایین نره و همچنین چیزای تند و تیز مثل فلفل، سس فلفل، سس عمبر غذای هندی، از این چیزا نخوره اینایی که براش بده ترک کنه پنجاد درصد تپش قلبش خوب شد حالا چیزایی که مقردی قلب بود یه چند تا شوستتون گفتم مثل چی بود؟ میوه به یا مربای به میوه آمله یا مربای آمله. گل بومادران یا دم کرده گل بومادران با اصل آویشن یا میوه گلابی رسیده مفرح قلب یا انگور سیاه هرچی سیاه تر باشه بهتره هم برای تقویت حافظت کسی که کم بوده منگه نزداره هم رفع هم مقم میکنه تو آیات میگه رفع هم و میکنه خب قلب تم هست این مال این مطلب تو این ترشیجات آبلیم ترش بسیار برات بده مخصوصاً آبلیم و ترش مونده بعضی از متخصصین مثل دکتر سیف الدین نبویر تو کتاب پیشگیری از سکتهای قلبی که کسانی که سکته کردن یا علائم سکته در اونها آشکار شده بهتره که با آبلی موتورش خدا فیزی کنم مخصوصا آبلی موتورش مونده که هم تپش قلب رو بالا می بره و هم سبب توسیدگی و شل شدن بافتای ماهیچه بدن میشه از جمله بافت ماهیچه قلب رو ازولش رو شل میکنه و تو پمپاژ خونچی عموجون کم میاری پس تو کتاب پیشگیری از سکته های قلبی دکتر سیف الدین نبوی میگه دیگه باید از آبلیمو ترش خدا کنیم مخصوصا آبلیمو ترش مونده بعد میگه جایگزینش سرکه طبیعی قرار بده که تو روایات شیعه بهترین نوع سرکه رو سرکه طبیعی انگور میداند و تو بحث طب سنتی بهترین نوع سرکه طبیعی انگور سرکه طبیعی انگور عسکری قربون امام صادق علیه السلام دارم میگه مردم وقتی میخوان قضاشون شروع کنن با نمک شروع میکنن و حال اینکه ما با سرکه طبیعی خل یعنی سرکه طبیعی انگور شروع میکنیم به اسطلاح امروزی ها نکه قاشق چای خوری میشه نیم گرم تا یک گرم تصابه فهم بودیم ما چی گفتم فهم شد. پس آب لیمو ترش تازه لیمو امانی ترشک گوجه سبز آلوچه اینا نخوریم کسی که تپش قلبش بالاست حالتون بدتر میشه چیزایی هم که خوبه گفتم مقوی قلب چه به صورت گیاهی چه به صورت میوه یا مرب باشه. دادن اگر کسی هم ضعف اصاب دارد هم تشنگی کازب دارد هم ضعف قلب دارد اینجا شربت گل بیدمشک مخلوط با اصل آویشن میخوره در بین روز و اصران شبها قبل از خواب یک لیوان آبسیب به تازه سیب قرمز معطر لبنانی یا سیب گلاب خراسان یا سیب زد رو مخلوط با اصل آبیشم میخوره هر خوب میشه یعنی هم زعف عصابش هم تشنگی کازبش و هم زعف قلبش بله اگر تپش قلب نداری و اگر افت فشار خون زیر ده نداری ولی فقط عطش کاذب یا بیماری تشنگی داریم. اینجا یک لیوان آب سرد عادی رو با نصف لیمو ترش، آب لیمو ترش تازه به چلن نصفش. بدون اینکه شیرین کنی، هم بزن بخور. عطش کاذبت خوب میشه. ولی به چه شرطی؟ به شرطی که فشار خون زیر ده نداشته باشیم و به شرط این که تپش قلبت بالا نباشیم سال اول اینه در مورد کمخونی سوال کردن ها زیایی و خواستن که کمی توضیح بفرمایید این چون در مورد کمخونی حالا صحبت نکردیم از علائم بفرمایید و راه های درمانون اینشالله از هفته دیگه کاغذاش دست هم نسان. انشالله از هفته دیگه وارد کمخونی و اقسام به نوع فقر آهن، فقر اسید فولیک یا فولاد اسید فقر بیتامین به دوازده، کمخونی تالاسمین بعد ما مینورش، خفیفش، شدیدش بحثای هموفیلی، بحثای کمبود گلوولای سفید خون یا ازدیادش کمبود گویچه های قرمز خون یا ازدیادش کمبود پلاکت های خون یا ازدیادش کنبود آلبومین خون و رو همین رو انشاءالله میگیم رو یه خلاصه بگم یه چار پنج سبب باید دوست توضیح بتم مثلا اگر کسی فقر آن داره خورما سیر عسل سر فقر ویتامین به دوازده داره یک روز در میون یه سیخ کباب بخوره چون ویتامین به دوازده در گوشت قرمز بالاست به شرطی که اوره خونش بالا نباشیم یا کمکاریه کلیه نداشته باشه یا اگر اسید فولیکش پایین هست سبزی خرفه یا کاهو و یا لبو مثلا بخوره یا اگر تالاسمی هست یا مخلوط سه شیره شیره خرما شیره انگور و شیره توت بخورن یا اگر گلوبولای سفید خونش کمه مثلا بادرنج بویه یا عرق اویه استکان مصرف کنه یا اگر تو بحثای گویچه های قرمز خون مشکلاتی دارد از ایسه هسته گلول های قرمز خون هموگلوبین و فقر آهن شدید دارد اینجا روزی چهارده عدد میوه اناب رسیده مخلوط با اصل بخوره تولید خونه سالم تمیز می شود یا اگر مثلا مغز ساق قلم استخوان پاش کمه و همچنین دوچار خونی هست تولید خون تازه و تولید مغز ساق پا با قلای آپز روزی چارده عدد مصرف کنه به شرطی که بیماری خونی جنتیکی فاویست نداشته باشه و چیزایی دیگه معاملات و تا ورق امتحانی رو ستون توضیح بدم فرمودید عرقیات طبیعی که شما میفرمایید تا جای زیایی بعضیش همیشه سوال میشه در این در واقع داروییایی ها یا داروسنتی ها هم خیلی به راحتی پیدا نمیشه اون سرکیستی سی و اگه خاطرتون باشه چقدر شما فرمودید و راه هم به دوستان فرمودید این عرقیات رو هم اگر بخوان شخصا تهیه کنن به چه ترتیب هست چه راه و دستور عملی داره مثل حالا مربا رو که همیشه میفرمایید حتما با اصل تهیه بشوند راهی برای تهیه همین عرقیات گیاهی چه هست طبیعیش اول اینا رو گیاه ها رو زده افونی میکنیم با آب میشورید بعد زده افونی میکنیم مثلا با محلول آب نمک یا مثلا با محلول پرمنگنات پوتازیون بعد دوباره شستشون میدین آبش از آب کشرت میکنید بعد اینها رو میریزید توی یک ظرفی که خروجیش باریکه اینه لوله های بالون در محیط های آزمایشگاهی هست مومنان. بعد اینجا میجوشه تو آب بخارش بین از طولول سرد میشه میره تو ظرف دیگه اینه این گلاب چجوری میگیرن دستگاه گلابگیر طبی همینجوره میگن می عرقیات طبی بعد دوباره این کار کنن میشه گلاب سنگین دو کوره که قدیمی ها همینه بعضی افراد هستن گای سناشون بالاست از طرف های سیدی میره به طرف قار مقان. حالا اسم اون ده بلد نیستم یه پیره مرد پیر کار میکنم مثلا طبیعی میگیرن گاهی افراد میرن میخرن خودتونم هم تو خونه تون میتونین به شرطی که بچه کوچیک نه باشی بازی گوشی کنه باز دست پای کسی کباب نشه پر جایی که ما را بادرست میکنین یا رب درست میکنین یا عرقیات درست میکنین اگه بچه بازیگوشی نباشه رفتا آمد کنه خودتونم این دستتون آستین گشاد نباشه اینو یک کش من لب زرف گیر نکنه اینا احتیاطات رو رعایت کنه این پایین شلوار رو با یک کش ببند به پات این دامن مثلا اینطوری نباشه مثلا گیر کنه به زرف این احتیاطات خیلی مهمه بعدم بذاری این سرد بشه تو یک آب سرد مثلا آب لگن آبش تمیزه با همون شیشه میذاری سرد میشه بعدم میریزی حالا تو زرفای دیگه در عرقیات باید درش بسته باشه حالا با چوب پنبه یا با پارچه نخی که بعد روش در پلاستیکی ببندی ولی اشتباه حالاییه چیه آب مقتل به اضافه اسانس شیمیایی به اضافه در پلاستیکی سه تا اشتباه. فش سرانم انجام میدم متشکرم برای افتادگی دریچه قلب جای زیایی چه دارویی خوب است گفتیم کسایی که اختلالات دریچه دو یا سلختی قلب میترال مماننده او دارند و همچین افتادگی دارند اینها هر شب پنج برگ کلم برگ سبز رو می‌ریزند تو قابلمه سلیوان آب می‌ریزند میجوشه میشه یک لیوان از آبشه صافت میکنن با اصل آبشه شیرین شیری میکنن میخورن اختلالات دعیچه قلب خوب میشه بدون عمل جرایی متشکرم، ما از فرودی ما که در خدمت استاد زیایی بودیم چند جلسه در مورد بهداشت پوست و مو صحبت کردیم شاید نه یا ده جلسه بود بعد هم در مورد دستگاه گوارش تقریبا باز هم تقریبا ه جلسه صحبت کردیم این موضوع موضوع سوام یعنی اگر شما بزرگ باران در این دو موضوع قبلی سوالی دارید از بابر جواد اگر این فیلم ها را تهیه بفرمایید کاملا جواب خواهید گرفت. چه چیزی ضد استرس قلب است؟اج زیاییم. اصلا این استرس ها یا به قلب برمیگرده یا به انصاب استاد؟ یعنی نگرانی مستمر. نگرانی مستمع تعادل ترشوی هورمون‌های های داخلی رو به هم میزنه اختلالات تو خواب میاره اختلالات روانی میاره اختلالات در تپش قلب میاره نامنظمی زربان قلب میاره یعنی نظم عمومی بدنت رو به هم میزنه پس همینطور که مدیریت اختیاری داری مدیریت در بحران هم داشته باش یعنی اگر دنیا با تو نساخت تو با دنیا بساز. حب با دنیا رست کل خطه اینکه من دنیا رو دوست داشته باشم، خدا و قیامت و حساب کتاب یادم بره این بده. اما اگر مدیریت در بحران داشته باشم دست پا گم نکنم، بتونم خودم رو جمع جور کنم. امکانات موجود زندگی و اجتماع در نظر بگیرم، مدیریت در بحران کن، گرونی هست، توبرم است، اقتصادی دشمنن تهدید دشمنم هست. بعضی منافقین دست پاچلوفتی داخلی هم هست و همین رو هم دیگه بذار حالا به عنوان یک شوهر به عنوان یک پدر بزرگ فامین یا هر کسی هر جه هست استاده حالا مدیریت در بحران هم بلد باش که به هم نریزی اگر به هم بریزی کار شخصی هم نمیتونی انجام بدی تا چه بخواد بخوایی کار اجتماعیت به نرد احسن انجام بدی همین مدیریت برخیشتن ها 50 درصد مشکل رو حل میکنه. تو مسائل دیگه گفتیم شربت گل بیدمش، شربت گل بحار نارنج و همچنین تو بحثای دم کرده ها گفتیم دم کرده گل رایی، چای کوهین. این رو توضیح قبلن ها دادن. چه چیزهایی برای در واقع زد تیر کشیدن قلب مناسب است نوشتن ما سه شب در مورد قلب صحبت کردیم هر سه شب هم این سوال شده که این دردهای قلبی که ما احساس می‌کنیم کدوماش مرتبط به قلب کدوماش نیست این که صحبتام از ظاهر اگر از ظاهر به صورت نقطه‌ای می‌سوزه یا تیر می‌کشه این بیشتر از جوش خوردن خودخوری درگیری ذهنی هر کدوم با هم فرق کن یا بحث‌های الکی کدو کردن با قول مشهدی ها کل کل کردن اینه دوتا خروس جنگی اینا معمولا های طرف چپ قفسه سینه میاره ربطی به ناراتی قلبی نداره کم خوبی های دیگران رو ببین برای دیگران هم ارزش قائل باش افراد هم اندازه خواهشون سواد دارن تجربه سعی دارن حرف خوب هم دارن خب یکم هم گوش بده بعد نظر خواهتم که نظر حقه بگو اما تبقیه نداشته باش که همه به نظرت عمل کنم آیا تالا شده افراد بشر به تمام فرمایشات خدا و چادم عصم عمل کنم آیا شده مقلدین صالح به همه فرمایشات مراجع صالحشون عمل کنم وجدانن نه پس من شمایی که نه خدایم نه چادم عصمیم نه مرجع دیدی توقع بی جاست چه تو فامیل باشم چه تو همکارا چه تو حسینیه مسجد حرم ممانندو ما اگر توقع داشته باشم هر چی که بگم همه عمل کنم. توقع بی انتظار بیجاس خودخوری میاره درگیری ذهنی میاره بعد عینک بدبینی میشه یعنی خوبی های افراد رو نمیبینی همش نکته سنجیای های بی تصاریف فهم بودیم؟ خب به هم میریزی این درد میگیره اختلال تو خواب میگیری بی... می تصاریف فهم بودیم زود اکور درد میری بی حوصلگی در تو زیاد میشه پس یادتون باشه همینطور که خود شما پاهنهای مثبت رفتارهای مصبتی داری دیگران هم اندازه خودشون دارن همچی قلبت راحت میشه ریلکس مثلا پدری، مادری، برادری، خواهری، عروسی، دامادی هر مدل وقتی خوبی افرادم در نظر گرفتی همیشه با حسن زن به دیگران نگاه میکنی این هم تو روایات شیه داره میگه به یک دیگر شما محبین اهل بیت و اون حضرت خانوما که مؤمناتن نسبت به هم دیگه میگه به خاطر محبتتون به چارده معصوم هم دیگه رو دوست داشته باشین از این جهت از جهت محبت به چارمعصوم دوم حسن زن به یک دیگر یکی از واجباته که باید محبین اهل بیت نسبت به هم داشته باشه اگر سوء زن داشته باشن که حرام گناه کبیره اگر به زبون بگی که یا مزخرست یا قیبته یا تومت باز میشه سه تا گناه کبیره دیگه دیدی به هم می‌ریزی یا نه بله که به هم می‌ریزه دلیل بسته شدن رگهای قلب چیه این سوال هم در طول این چهار شب هر شب شده چه کنیم باز بشه چه چی چیزهایی بخوریم احیانا به همون نسخه شاطره و کاهو و اینها خواهید رسید ولی بفرمایید که آیا همون رگها که بسته میشه و می برای آنجیوگرافی و شاید خیلی از ماها بزرگتر همون بین بی مسئله دو چهار بشند موی ها هم که بد میگن بسته همینه نسخش همینه یا خیر. درصد مصرف دارو از حیث سن یا مقدار بستگی یا یک رگ یا چند رگ فرق میکنه اما بیشترین رسوب در رگ های شریانی به ازاله قلب یعنی ساخ رگ اصلی و فرعی خون به ازاله قلب قالبا این سه چیز رسوب میکند یک رسوب سودیوم دو رسوب تریگلیسیرید خون سه رسوب کافئین حالا سودیوم چکار کن نوشابه های گازدار آب میوهای شیمیایی نمک زیاد این نخور مال این زیاد چای قهوه شکولات کاکاو نسکافه نخور مال تریگلیسرید خون بالا ترانس چربی بالا روغنهای هیدروژن مثل روغن جامت خامه سرشیر کک خامهی رولت نارنجکی تعدیق کله پاچن جیگرسی ها سخ کردنی این رو نخور شد پنجا درصد خوب شد 50 درصد دیگه تره فرنگی کاهو بدون سس به همراه غذا بخور با نارشام شام قبل از خواب کرفس بخور مثلا یه رگش گرفته میگیم نصف استکان دو رگش گرفته یه استکان سرک گرفته با چند تا فری میگیم یک لیوان آب کرفس هر شب قبل خواب آب کرفس خام میشه آب میوه میگیریم هم قند خونش میاد پایین هم چربی خونش میاد پایین هم فشار خونش میاد پایین هم رگش باز میشه. داشته به جون امام صادق علیه السلام کن یفتح سودت و هاش هم باز میکنه جمع محلا بالفلام جنس مفید عم استیعابی عم شمولیه سودت جمع مکسره جمع سده الحلف هم جنس. جمع محلا بالفلام جنس مفید عم استیعابیه یعنی همه اقسان رگای بدنه چه رگهای سخ رگی که شریانیه چه وریدی که سیاه رگیه چه رگهای لمفاوی که بحث رد و بدل کردن مواد زائده از بحث متابولیزه شدن مواد تو سخت سازای داخلی همه رگات باز میکنم یک رسوبگیر طبیعیه تمام شده دیگه های بالون این ورشه بزنم این ورشه های آنجیو بگیرم این ورشه ها چیمه؟ ممکنه بهترین دکتران باشه هم نمیخوایم اسم شریفشون ببرم بهترین بیمارستانم باشه اسمش هم به همین جا بخوره اما یه مرتبه میبینی این بخش همه رو میدونم به بیرون چرا؟ مثلا هم فرض کن آکاسیوهای یک جایی مثلا آتیش میگیره بقیهش به ما چه؟ مرب تا تمام طفلاكم به دو به دو باید بیان تو بیرون رو چمنا بشینم میخوام بگم مؤمنین و مؤمنات تو بحث توریسم مال بیمار اینا هیچ اشکال نداره و بهترین بیمارستان خاورمیانه یا بهترین سرم سازین تو بحث خاور اینا هیچ اشکال نداره سر جای خودش خوبه خواستم بگم با کمترین هزینه با کمترین استرس بدون عوارض جانبی سه کلمه ای کسید گفتم سلام هم به دکتر عبریشنی برسوید آدم خوبی خواستم بگم مؤمن با کمترین هزینه ای کلمه گفتم چیز جایی دیگه, دیگه هم هست مثلا اگر کاهو یصف دم برگ چگوندن هم یصف دم عناب هم یصف خونه میکنه تو بحث های آلو و هم خونه تا رقیق میکنه هم گردش خون سریع میشه. هم یوبوسسط حاد و مزمن خوب میشه. و هم اگر کسی خونی فقر آهن داره. اما آدم بدخوریه گوش نمیخوره. مثل بچه کوچولو هستن؟ خوردو ها. دختر یا پسر پدر مادر با چه جون کندنی میرن گوش میخرن معام ها کار میکنن چرخ هم کرده بچهش نمیخوره. حالا چیکار کنی؟ اگر کسی پول مول یختو نداره. یا سوء تغذیه داره یا بدخوره گوشت قرمز نمیخوره با اینکه بیماری خاصی مثل کمکاری کلیه یا ازدیاد اوره خون یا بیماری نقرس MSU نداره اما کمخونی فقر آهن داره چیکار کنی کم کمخونی فقر آهنش هم خوب شه؟ هر شب قبل از شام یکی دو ساعت منده به شام هفت عدد الا چارده عدد به صورت میکیدنی دونه دونه تو دهنش نگه داره آلو بخارای خوشگرو خیلی فواید دارن هم تو درمان کمخونی فقر آهن خوبه هم ملین مزاجه هم رقیق کننده خونه هم تو زنان شیرده شیرشون اوسع بچهش زیاد میشه اگر خانوما حرف مردم قبول ندارن حرف خودتون قبول کن خانم فاطمه اکبری کتاب میوه درمانی نگاه کن حرف ما هم گوش نده و حرف زن خودتونه گوش بریم دیگه محقق و پژوهشگر فاطمه اکبری کتابش نگاه کن جدیدترین کتاب کتابایی دیگه هم هست مثل دکتر حسین میر حیدر کتاب معارف گیاهی دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران. و کسانی که پدر فلور ایرانم مثل دکتر قهرمان بقیه کتابات چاب نشده 17 جلدش چاب شده و کسانی دیگه هستن لهجشون ترک زبانم مثل علی افسر خیاوی تو کتابم دارت المعرفم داروای گیاییم بعدم میگه این کتاب رو هدیه نمودم به حضرت خانمم چنین ها چنان لحجهش ترک آزربای جانه. و همچنین کتاب هایی دیگه هست که تجربی کارن و پنجه شهز سال سابقه تجربی دارن مثل نسخه عطار مرحوم شد مقازش هم اون وله میدون شده به طرف تی بی تی بود آقا جانش مرحوم شده پسرش داره کار میکنه نسخه اتار یا داروهای گیان داروی احمد حاجی شریفی معروف عطار اسفانی یا توفی حکیم مؤمن محمد مؤمن حسینی یا تو روایات کتاب تبل معصومین دکتر لبیب بیون مایجستر دانشگاه دمشق بحث اجاس اجاس یعنی آلوب خارا یا روایاتی که در این زمینه است تو وسال شیعه جلد 16 جامعه احادیث شیعه آیت الله ازما برو جردی قم جلد 28 به حارم علامه مجلسی جلد 66 یا دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله محمدی ری ترجمه دکتر حسین صابرین و افراد دیگه ماننده دکتر محمد صادق رجحان استاد دانشگاه تهران کتاب میوه درمانی نگاه کنیم دیگه مومن هست پس آلو و خارا چقدر آسونه؟ اجاز خدایا اهل مجلس ما رو اهل بهشت قرار بده ایشان و نسلشان رو زوری طیبه قرار بده مجاورین و همچنین زوار امام رضا رو با حوایج برورد شده با آفیت و امنیت کامل با اوتانشون برگردان دیدگان و قلوبشونو به جمال و قلب نورانی مولا صاحب زمان منور بگردان اصلا به همگی کرامت بفرما امواتشان را ببخش و بیامرز شهدایشان را با شهدای کربلا محشور کن این گفت و شنیدها را به کرم و فضلت قبول بفرما صلوات بر محمد و آل محمد